خب اگه خدا هست آیا بگیم خدا ولی شماست خدا سرپرست شماست این زیبا ترین شکل نظام زیبا و قشنگ هسته میشه یا نه از امام صالح عدیس که کنم اللهو اصول کافی جلده بر. اللهو ولی من عرفه خدا ولی کسی میست که اون کس خدا را عرف و شناخت کسی خدا رو شننا رسم وقتی خدا رو شننا بلا تشوی من بیچاره تنها مونده تو بیابوم میبینم خطر از هر طرف داره منو تهدید میکن. چهار تا نجات دهنده قبیل دمخواار و بسود چهار طرف من قرار دارم. من از این چهار نفر میتونم کمک بگیرم من از این محلکه نجات بدم ولی این چهار نفر رو نمی شناسم. خدا رو کسی نشناسه درد به دامنده خدا نمیآیزه. خدا رو کسی نشناسه بندگی خدا برای اون معنا نداره خدا رو کسی نشناسه ولایت الهی برای اون معنا نداره قبول نمی کنه. ولی خدا را بشناسه این روز و معرفت با عقل ازه. لذا امیر المهمنین باز رشون کافی با عقل و جن این حدیث که منده با آخر در باب عقل و جن و بلعقل عرق حل عباد خالد و خون دو تا امیر بگذاری هم امام صادق فرمودند: الله ولی یا من عرفه خدا ولی کسی است که را شناخ. یعنی اون کسی که خدا رو شنا خدا رو به بلایت قبول کرد امیر المؤمنین فرمودن و بالعقل عرفه العباد خالقه هم بندگان با امر خالقشون رو شناختن. پس علو کار لازم خدا رو بشوسیم. حالا که شناختیم، دیگه من دغدغت ندارم. عالم‌ترین، غبی‌ترین، چیچ هر چی بخوام بگم، اوست دیگه. حالا که او میشه اگر بناس من ولیر باشم، یعنی سربراست. آیا کسی که او قرار میده بهتره یا خودم قرار میدم؟ از و علیه ذلک یلا و حبیبه. حالا دست کنید روز اربعین زیارت اربعین یعنی دو دیت رو داره بیمانش رو میده یه دیت آی آه بشر ولایت خدا رو میخوایی یا نه اگه ولایت خدا میخوای خدای ادر و مروان ولی قرار داده از خرام علا ولی الله و حبیبه و نجیبی و خلیله نجیبی برگذیده یعنی جدا کرده ولی خدایی کسی است که خدا را جدا میکنه یعنی خدا چی میگه؟ بگه من من میخوایید من شما راه نمایی کنم؟ میخوایید من راه دست بگیرم؟ من سر باشم از این محلکه ها شما به پیرهانم توجه کنید به این آیه این نما قرآن الله. ولی شما خداست ولی بلا خواهد بلا خواهد بعدش و رسوله و الذین آمنوا الذین يغيمون از و يوتون از زکاة و هن راکرون که رضیه از تعمیره هنگوش در بخشی در قرآن که اگر لازم شد بحثش رو خواهم کردن شان دار دقیق اگر شما ابنما ولی کمردان خدا رو ولی قبول کردید خب این خدا میخواد شما رو سرپرستی کند خدا نجیب داره خدا صفی داره خدا اجتبا داره یعنی برمیگوزینه لذا به رفت بفرمید در اینجا یکی دو نکتر زیاده و رو در این رابطه اولش از سلام معله الله و حبیبه از سلام و معله الله و نجیبه سلام بر اون کسی که ینی باوصله می ضر میگی ولی یه خداست یعنی که یعنی مردم ییل او رو به شما پشت خارجی ویین در مقابل میگه تو همون جوری که انگشت در در سلاس که یه مقدمشر کردم همونطوری که به فلار بلند گفتن خط رو نشون میده ما این خطی هستیم ما این وری هستیم. این شعار را در روز آشورا همان دونه که جناب جابر اومد در کنار قبر متحرابی عبدالله روز عربعی فریاد زد ما هستانه فریاد میدنیم خط گم نشه مسیر معلوم باشه خریب تحولات زمانه را نخوریم سلام علا ولی خدایی خدا فرستاد پرست پرستاده خدا تو رو, سر پر از خدا تو رو فرستاده دست ما رو بگیر اونایی که گدونی کردن رسیدن رو جایی که باید رسیدن در طول تاریخ اونایی که قددانی نکردن خودشونو بیچاره کردن ولی هستی که حبیب خدایی حبیبه باور می‌گیره به کی؟ السلام علای علی الله و حبیبه یعنی حبیب الهی تو محبوب خدایی خدا تو رو دوست داره خدا تو رو دوست داره یعنی خدا تو رو قبول کرده خدا کسی رو قبول کرد تو میخوای خدایی بشی باید که خدا قبول کرده بری دنبالش پس تو ما بروی یه عربار ما دوبار تو مثل که در زمانه مثلا بگیم آقا دین چیه خدا چیه اولیاء دین چیه میگه ما راه راه گرم نمی مسیح رو شناخته این دوبارشون میگیریم و سلام حقا خلیل الله و نجیبه این حقیبه الهی خلیل الهی هم هست با اون که اول از کردم و نجیبه او رو خدا انتخاب کرده برگزیده است